به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاتیما افشار این داستان علی و ببر جنگل روزی علی توی جاده کنار جنگل قدم میزد که یهو صدای قررش حیوانی رو شنید با تعجب از خودش پرسید، این قررش چه حیوانی و از کجا میاد؟ وقتی که اطراف خودش رو نگاه کرد، ببری رو داخل قفصی دید و به قفس نزدیک شد. ببر به اون گفت، خواهش میکنم منو از این دام نجات بده. علی نگاهی به ببر کرد و گفت، اگه من در قفس رو باز کنم و تو رو آزاد کنم تو منو میخوری ببر به علی میگه که نه نه مطمئن باش من بهت قول میدم که هرگز این کارو نکنم خواهش میکنم که منو از این زندان نجات بده علی قول ببر رو قبول میکنه و در قفس رو باز میکنه و وقتی که ببر از قفس خارج میشه با یه نگاه خشمالود و عصبانی و علی میگه من چندین روزه که توی قفس بودم و هیچی نخوردم. خیلی گرسنمه، میخوام تو رو بخورم. علی با من میگه ولی تو به من قول دادی، من به تو کمک کردم. من تو رو از قفس نجات دادم. تو باید به قول خودت وفا کنی. اگه منو از بین ببری دیگه همیشه آدما از تو به بدقولی و بیرحمی یاد میکنن. ببر با عصبانیت بهش گفت نه nah, اصلا این حرفت درست نیست. درسانی کسی جرأت نداره که به من تهمت ناروا بزنه. من حاضرم که با تو تو این مورد شرط ببندم. اگه چهار نفر صحبتهای تو رو تایید کردن از خوردنت طرف نظر کنم. ولی در غیر این صورت تو رو میخورم. علی و ببر جنگل توی جاده را افتادند تا نظر چهار نفر رو در رابطه با موضوعشون بپرسن. بعد از مدتی پیاده روی به گاه نری برخورد کردن. بعد از اینکه ماجرا رو برای اون گفتن ببر پرسید: «خب نظرت درباره جریان ما چیه؟ آیا من حق دارم که علی رو بخورم یا نه؟ گاوونر گفت: در این مورد که حق با ببر باشه یا نه نظری ندارم. اما آدما همچین حقی رو برای خودشون قائل میشن. اونا حیونا رو شکار میکنن و از گوشت و پوست اونا استفاده میکنند. سالهاست که من برای یک انسان کار میکنم اما حالا که پیر شدم و قادر به کار کردن نیستم، اون دیگه توجهی به من نمیکنه و مدام تکرار میکنه که دیگه تو پیر شدی و به کار منم نمیای. باید تو رو بخوشم و از گوشت و پوستت استفاده کنم. با این حساب من فکر میکنم که حق با ببر باشه. اون باید تو رو بخوره و خودشو سیر کنه. علی و ببر از گاو نر جدا شدن و برای پرسیدن نظر دومین نفر به راه خودشون ادامه دادن. مسیر خودشون مرغی رو دیدن که بین خاک و برک ها نشسته بود و غمگین به نظر می اومد علی ماجرای خودش و باب رو برای اون تعریف کرد و از اون خواست تا نظرش رو نسبت به این موضوع بگه مرغ گفت من مدت 6 سال تمام تخم کردم و روی اونا خوابیدم و مرتبا جوجه هایی رو به دنیا آوردم و به انسانهایی که توی مزرعه کار میکردن دادم. حالا که پیر شدم، زن صاحب مزرعه میگه که تو دیگه پیر شدی و به کار من نمیای. همین روزا تو رو میکشم و میخورم. من فکر میکنم که حق با ببر باشه. حالا دیگه منو تنها بذارید. چون من خیلی غمگین و افسردم و نمیدونم با این مسئله که پیش اومده چه کار کنم. علی و ببر از مغ جدا شدن و به راه خودشون ادامه دادن مسیر خودشون به درخت بزرگ رسیدن. وبر ماجرای خودش و علی رو برای درخت میگه و از او میپرسه که آیا به نظر تو من حق دارم علی رو بخورم یا نه درخت میگه، من سالهاست که میوه های زیادی رو به انسان که تو این نزدیکی زندگی میکنن تقدیم کردم. حالا که پیر شدم و میوه هم شیرین نیستن اونا میگن که تو دیگه درخت پیر و کهنسالی شدی و سمری هم نداری. همین روزاست که تو رو بباریم و بسوزونیم و استفاده کنیم. حالا با چه این کاری که آدما کردن و همه چیز رو برای رفاه خودشون میخوان فکر میکنم که حق با باب باشه و اون میتونه تو رو بخوره. بعد از سخنای درخت ببر رو به علی کرد و گفت خب تو شنیدی که چی گفتن؟ نظرشون راجبه به تو چی هست؟ بنابراین من تو رو میخوام بخورم. علی به ببر گفت ما با همدیگه قرار گذاشتیم که نظر چهار نفر رو بپرسیم. الان فقط سه نفر در مورد موضوع ما نظرشون رو بیان کردن. هنوز قضاوت نفر چهارم باقی مونده. دی این نزدیکی ها یه میمونی زندگی میکنه بیا بریم پیش اون و نظر اون رو هم بپرسیم. ببر گفت خب اونم میدونه که حق با منه. علی بهش گفت قرار ما قضاوت چهار نفر بود. هنوز یکی باقی مونده. بنابراین ببر قبول کرد که نظر نفر چهارم رو هم بپرسه. به خاطر همین رفتن پیش میمون. علی ماجرای خودش و ببر رو برای میمون تعریف میکنه و از اون میخواد که نظر و عقیدش رو بیان کنه و بهش میگه که با اینکه من رو از قفس نجات دادم آیا اون حق خوردن منو داره یا نه میمون بهش میگه من اصلا متوجه حرفای تو نمیشم و نمیدونم که تو چی میگی ببر میگه تو همه جریان رو شنیدی حالا بگو ببینم آیا من حق دارم علی رو بخورم یا نه میمون میگه من که نمیتونم تو این مورد قضاوت کنم چون ماجرای شما رو به خوبی درک نمیکنم اصلا نمیدونم که چطوری یه ببر بزرگ و قبی حیکلی مثل تو میتونه توی قفس جا بگیره ببر با حسابانیت میگه ولی من توی قفص بودم اگه باور نداری با من بیا تا نشونت بدم میمون میگه خب من باور نمی کنم. تا چیزی هم به چشم خودم نبینم اونو نمیتونم باور کنم بابر میگه پس بیا با هم نزدیک قفس آدما بریم و من بهت ثابت کنم که توی قفس بودم و حق با منه بعد از این گفتگو هر ستاییشون به نزدیک قفس رفتند بابر داخل قفس رفت و به میمون گفت حالا میتونی ببینی که چطوری با این جثه و هیکل بزرگم توی قفس به دام افتاده بودم تو همین موقع بود که میمون به در قفس نزدیک شد و فورا در قفس رو قفل کرد میمون رو به علی و ببر گفت شما هر دوتون احمقی تو به خاطر نجات ببر و کمک کردنت به این ببر خونخار آدم احمقی هستی و این ببر خونخار هم از تو احمقتره. چون حرفای منو باور کرد و برای اثبات حرفاش دوباره به داخل این قفس برگشت فقط من موجود عاقلی هستم که با تدبیر و دوراندیشی جون هر دوتون رو از مرگ نجات دادم. جون یا آدم از چنگال ببر و جون ببر رو از شکار شدن توسط گلوله های انسان های شکارچی.